سیدنا رسول الله و آده طیبین و المعصومین و لحظت دارمت و علا عداد و اللهم و خیران شمیه مبشدین و رحمت رحمت رحمت رحمت بحث در باره استدلال به آیه نبر بود به حجیث خبره آقل ته بودن کشاره محدث ما را تنبا تنبا به اینکه خبر را رو را قبول بکنیم سوا اون مفید وصوب باشه یا نباشه شواهد تایید بکنیم تنبایدن ما باید این کار انجام میدیم هم سلاجه به که یکیت استدلال بایی این مبارکه اینطور که معموم سالت بایی تنبایدن باییشون سه برد زکر شده ایشون سه برد که یکی معموم رس بود که که ایشان به محکوم شیخ انسالین نسبت دادنیه که هم که مفهوم مفهوم شد را به محکوم وحث صحبت شد هست کردید اولا صحیحش نکرد مفهوم محکوم وحث محکیت نداره و ثابت میتنید برای جمع وحث توصیف یا اضافه اصفات مفهوم بسیار بسیار مشکله و کربی بین آنها و لقب نمی کنه اولا لقب کمی همه هم حالاته در ما نهبید وحث معتمل نیست و معتقدم که اگر وحث معتقد موصوف نباشه دیگه جزء مخموم لحظ حساب میشه لیکن استاد این اشراق هستند ما دیروز توضیحی رو که در این جهاز در استدلاب این آیه مبارکه راجع به وحث خود جهاز خبر حال تحب بودن تذکر این فنی کار متاسفهانه در کلمات و اصطا این جواب مونعکس نشده اینه که دو تا مطلب احساسی خیلی طلاقه است یکی این که آیا این وجوب تبعیان و که ظاهر شمعه یک تبد شرعی این یا اینکه نه وجوب تبعیان در اینجا یک ای هم روح است نقطه این که در ما نحنکه مهمه اینه که آیا آیه مبارکه سرقش برای بحث خبر و خبره یا سرقش برای بیان نده و بیان حال فاسب از کلمه در کلمات اصطور بزن و اصطور خیلی روشن روشن و در این بحثی که ما از آن داریم ایشون در صفحه 184 از همینجه در وحث مفهوم شرط آیه یک اشکال نرفیه ان الموضوع فلقضیه هوا نبر و مجیعرفاس قبیهی شرطون لوجوب تباییونه هم برد یادی؟ این چون مثلا این رو اینجوری محرک کردن که موضوع نبر پس گرمان اشکاز اون بجیه که شده این بجیه اشکال بکنن بردشون یا موضوع نبر این در حقیقت روح بحثه همه که ایشون در اینجا محروضان همه گرفتن این روح بحثه رو بحث این از که آیا موضوع نبره یا موضوع فاصله دو خواهد یه خیلی فهم خود ایشان در بعدش بعد از سجید صفحه 187 بله بلکه یشون 188 ایشون در اینجا سه احتمال در آیه داده بحث آینده می‌تونستم بذارم؟ بسیاری ایشون می فهماند که امکان الموضوع فیل آیت المبارکه قومت و حالتان مجیع به و مجیع و غیر الفاسقه به و این یکی سلام از در در و کهکن ها احتمال دوم انکان موضوع اول جایی به نور انعه جایی به امکان فاصلا اینطور به انکان حاضلا اینطور به ان جایی به ننظر کن و فاصلن و الکن غیر فاصل این احتمال دوم و احتمال اول که موضوع نور باش احتمال دوم موضوع از جایی به باشه. احتمال, احتمال سوم و اما امکانم موضوع و الفاسق و لهو حالتان لن الفاسق قد یه جی به و قد لا یه به این سه احتمال یعنی ایشون تا احتمال در این آیه موارکه دادن که موضوع چیه نبه الجایی به نبه یا فاسق بعد ایشون بگه اگر این احتمال سنگون باشه در اینجا دیگه محروم نداره. احتمال اول و دوم مفهم داره احتمال سوم مفهمه بعضیشون از ظاهر و منها فی مقام الاسباب به حسب فهم و معنا معنی است. این هم است که الان دارم میگم ایشون بعدها این مطلب رو فرما ما متوجه این مطلبی که ایشون بعد از چند صفحه فرما این قبلا هم باز گفته میشه یعنی اون روح اساسی بس این نکته است که همینطور که ایشون عوردن بعد ایشون میبود ظاهر رو منها مقام مقامل اثبات به حسب فهم الارفی حوال معنه ساله معنه ساله است که بیان حالت فاسق باشه حالا تعبیر من بیانی که از احکام فاسق باشه ایشون میگه اگه معنه باشه دیگه قضیه قضیه شرقیه محکوم نداره ایشون تو بحث قضیه شرقی محکوم شرط این بحث رو هم فرکره ما معتنده این که خوب بود ایشون تو مطمئن بحث هم مطمئن می کردن اون درخوا کنیم این نوع اختلاف ایشون بعد اگردن خودشون این احتمالات دادن من از کردم روز این بحث دو تا نقطه اساسیه، یکی این که وجوب توجیان باشه دوم این که آیه نازم باشه به تخصیم خبر که خبر دو جوره یا فاسق نیاد یا قبل خب اما اگر آیه نادر رو به حکم فاسق ناظر به تقسیم خبر نیست دیگه در غیر این صورت کار نده و حکم خب و محکوم قید لحب میشه حالا من یه مثال رو ارکی بزنم اگر فاسق کسی بکیسی مولا با قول آیه لحب داشت مثلا میز بخرب از صندلی بخرد، از اون صدا، از چسبو بخرد، موکد بخرد، فرش 4 5 و بعد بو گفت اگر میز رو خواستی از کلاف خیابان بخری، با دقت بخرد، چون او مواد اولیه خیلی حساسه. اینو خب اوف چی می‌فرمه، تعبد ازش این می‌خواد می بگه که اگر میز رو از اون یوابان به خصوص بخرید، اونجا مواد اولیهش رو درست مراعات نمی‌کنن، تأمل بیشتری بکن طرفا. ببینید چقدر کنی؟ این راجع به میز خیلی بود سوال اینه که این خیلی روی سندری هم میره رو زرچه سوک هم میره این خیلی رکت کنی؟ تا چیز باشه؟ مثلا این معناش این که اگر خواستی میز بخری از خیابان دیگری بگه نیم خواست بکنیم. رو کنیم خب این وقتی میگه ما رو مواده اولی حساسیم این نازل بگیده که در این فیابان مثلا نصفت اینکه که, این که مواد بد باشه مثلا نسبت بالایی از تا خوب هم در فیابان که نصفت بایین بعد راجع به صندری و ضبط و صوت و این هم چیزی نگفته یعنی چون چیزی نگفته مراجعه میشه به همان ارتکاز و اغلایی یعنی صندری که میخوری هم موادش خوب باشه هم شکلش خوب باشه هم صنعتش خوب باشه اون چیزی رو که راجع به میز گفت این معاش این نیست که بیاد راجع به بقیه هم بگید ناظر باشه بحث ما اینه خلاصه ای تصویر رو رو ما رو اون ما بحثمون اینه که اینجا ناظر است به حال فاسد به حال عادل اصلا نظر نداره به حال فاسد یکی از چیمون فاسد اونه که در خبرش سر خوف بشه قول پاسی خود رو نیش ترمزی. ترمزی توی بقت کرد امو خبر خبره خبر خبره هم رو اوغلای خودش میگه رو اوغلا نه میگه اوغلا قبل از جمهور برای خبر اوزه برای خبر اوزه در خبر خبری که و برای خبری که چند درصد دروغ میگه برای انسانی که 80 درصد راهنماشه درجات مختلف داره در. خاصنا بر این بحث گفتم بحث ما اینه این بحثا رو به این دولت نوشتن تعجب است استاد من اول اون مثلا خود که چه منتقد اشغال اینه از که تا آخر اون مسئله وجود و رو تحبودی میدونن این قبول اما راجع به محلوب آیه آخر در درست مفهوم شرطش این سه قسم میکنن میگن یک آیه نازر به نبه باشه. دو آیه نازر به جایی به نبه باشه. سه آیه نازر به حال فاسق باشه. اگر آیه نازر به حال فاسق باشی اصلا مفهوم نده راست هم اصلا آیه این یعنی در یک خصوصیت فاصله روشن شد و این نکته هم به نظر ما فاصله رو اگر ما یک مفهوم عرفی هم بگیریم که در عرب جاهلی معنا داشته یا در زمان ما بگیم فاصله کسی که لاابالی است کسی که جامعه روایت نمیکنه کسی که هنجارهای اجتماعی رو مراعات نمیکنه این اسمش فاصله است کسی که این جا و مراعات می‌کنه فصحت خودش رو عقل خودش رو قانون رو مراعات میکنه اگه خبری خبر این به خاطر اینکه اگر شما اعتماد مطلق کردیم ممکن است بعد گرفتهای راتون پزارشه. هست این مشکلی رو حل نمیکن. اما مفهوم این این باشه که شما تعبد داشته باشید خبر فاصعادل رو قبول بکنید انصافاً این در نمیاد. این راجع به استطلاح هست اشکال ما در حقیقت به استاد و نه به استاد به ققیه یکی، این که آیا حجوب واقعاً واقعا تعبولیست و شرعیست به نظر ماندن شاهعه مقدس در اینجا راجع به خبر صحبتی نکرده راجع به پاسق صحبت کرده یعنی شاهعه مقدس راجع به خبر و قبول خبر در محیارهای و اقلائی صحبتی نکرده اون چیزی که در صحبت کرده بر مردم تازگی داره اون هم تازگی نداره اون و ولذا میگه از توسی بقو من به جهار از توس بقو علامه فعلتم نادمی چون این آقا لاغبالیه چون این آقا قانون رو مراعات نمی کنه خب ممکن دروغم بگید ولی تو بگید من میشنستم محترزه از کسی میگه خب همین که این آقا لاغبالیه خب ممکن دروغم بگید این نقطه فاسق اینه حالا جهات دیگه رفاسق فرکن ا طلاق دادن. اون نکته دیگه ای داره پشتجن هاست اوندن نقطه دیگه داره امیر شدن نکته دیگه داره و لی مرجارال مثلا نقطه هر ک اون وکی شدن نقطه دیگه ای داره ا نقطتهش اینه که شما میین فاصله رککی بله می فاصل کی تو مشک داره. لا که آیا ذمهتون برای این میشه میگه نه توی این فاصل ممکن درو میدی شما فاصل رو می از طرف پس موم بالا مثلا شده میتونه وقتی عجیرش می کنم برای نماز چیز نده مشکل تمنی لذا آروم میگن که اگر شما فاصل رو وقتی عجیر کردیم برای نماز عملش درسته نمازش درسته یعنی شما علمه به برایت زمه پیدا نمی کنید مقام اثباتش گیرداره عملا نماز کنده نمازش درسته قیبت نداری که اما وقتی به شما نماز خوندن من نماز میت شما رو خوندن شما برایت زمه پیدا می چرا؟ چون یه آف حاصل ممکن دو گفت داشت ولذا شما فحض میکنید نه واقعا زنش برشت دیار که ولی شما شما نماز بود یه دقیقت هم خود دو خیلی خوب خود جای فحض نداره قبول میشه پس دقیقت بکنید اینجا آیه مبارکه و اینشالله عرض میکنین رو روح ما علامه فرسون نادمی من در سابقه در کتاب فخرازیزم احتمال بیره نادم است که مثلا یه نوع پشیمانی تقریبا شبه دائمی داره مستمر داره نادم اینطور نیست که پشیمانی برش پیدا داشته اینشالله عرض میکنن این نقطه ادبی زده کرده و مراد اینه که شما یک رو انجام بدید بعد یه قابل تدارک نیست. مورد از نادم یعنی. یعنی قرار باشه این کار رو انجام بدید. چون طرف دست درس نگه‌گذارید سوال بکنیم کاری نکنید که بعد غیر قابل تدارک باشه نادم یعنی کاری انجام بده که قابل تدارک فتوس بگو الان ما تو نادمینی. حالا من نکتهشو برعظ به دقت فرمودید؟ دیگه بعد خب قابل... مثلا بیان من عمل میکنم. خب عمل که بعد از بزن از در همون قصهی که میان آیه شهر نوزولش بوده آمد گفت برمی مصطبع مرتب شدن خیلی خوب خیلی خیلی من راه افتادن خب اگر 20 نفر از اون سی نفر پنجه نفر کشته میشد شما چه ها میکرده آب تدارک اون دیگه آب تدارک و تصروح و علامه فعلتون نادمی ممکنه که انسان با اعتماد در خبر لاعبالی ولو میدونیم متحرده از خزه. میکنه همین که احترام خدا رو کنار بذاشت احترام مقابل به کنار بذاشت این دلیل معرص هست که در این از بنابراین ذهن میاد که به احترام راهش این باشه بعد ایشون یک بجه دومی رو هم ذهن کردن از بجه رسانی موازکر حوشه کنن انصاری که از کنم ما از عوالت فخرازی کنیم به احترام قبل فخرازیم بودیم. من همه عبارت نگاه نکنم خلاصش اینه که خبر فاسد یه خصوصیتی داره از یک جرد خصوصیت ذاتی داره که خبر از یک جهت خصوصیت عرضی داره که اصطلاح خودشون خبر فاسد از این که آمد گفت در خبر فاسد چیز بکنی تبیان بکنی معلومه که در ذات خبر تبیان لازم نیست به عنوان عرضیش تبیان آمده به عنوان ذاتیش تبیان نهد پس اگر با عنوان ذاتیش به اصطلاح دارای تبایان نبود و با نبودن این عنوان عرضی دیگه نیست اگر فاسق نبود دیگه تبایان نیست این خلاصه این مثلت اساسا درسته یعنی این که ما در کلام در صحبت خودمون اینطور نیست یعنی انسان حکیم در کلام خودش نکاس رو بکنه مثلا اگر کلیه خبر قبول نداره میگه هر خبری که آمد تباییم بود کلیه خبر. اگر آمد گفت که خبری کسانی که فلسیم از ده هات خبر خبری کسانی که فلسیم مثلا بگیم که چارده ساله خبر خبری کسانی که مثلا هشتاد ساله بگیم درسته میگن وقتی غیر زدی به عنوان ارزی او من میشه خبر فیلسی تباییم نمیخواد به خاطر عنوان عرضی تبای اگه گفت خبر افاده 80 ساله رو تحقیق بکنه این معنیش اینه که 80 سالگی تاثیر داره اگر مرادش کل خبر باشه چون 80 ساله خبر ترویان بگه از این که در عنوان ارزی، این مفاد و مفهومش اینه که اگر اون عنوان عرضی نباشه ترویان میشه این رج از کلم خوندیم ما اصلا تخرازی شدن به همین واسطه مساله کرد به عبارت تخرازی رو بگیرید که اینجا مردم استاد به آیه خویی این به به شیخرضه بعد ایشون فرمیدن برای این استدلال چند تا ایراد شده سه تا ایراد کردن و جواب دادن و اینکه این کتاب مختصر نوشته هر سه ایراد به خلقای کلی سواد یعنی چیز نقطه‌ای بود به واسه فنی در هست که انسان ازش رو پیدا کنه تقریبا چیزی نداره که نقطه فنی باشه آنم مراجعه کنه خود ایشون ایراد دیگری داره فتح هستن لعن نهاد ایراد صلاسته غیر وارده خیلی داره نه یر دو علیه انهاد رو جنیزن یر جهر استدلال مفهوم الوهند راسته اصلا از در کتاب فخرازی این بکیه مورده برشم مفهوم میشه اصلا نباید استاد اینگاه میکرد. این, این همون این تقریب استدلال مفهوم شه بس عنوان عرضی عنوان ذاتی کیفیت استدلال مفهوم واسه چیز دیگه نیست برگشتش بره و لذا ایشون بگه بله قبوله خبر به ماه و خبر قبولیان نمیخواد به ماه خبر فاسق لیکن خبر فاسق بودن فاسق بردن فاسق بودن علت منحصره نیست لذا مفهوم دارن میگه و احتکرش ایشون اشکاره میکنن بله بله که بیانیست برای اون بله و اشکالش همون اشکالی بود و ما توضیحاً عرض کردیم این ایشان درسته این همون مفهوم وصفه یه تقریب دیگریز از تقریب مفهوم است و نکته جواب هم همون نکاتی است که ما ارز کردیم یک تقریبان در اینجور موارد وجوب به اصلاح تحبوهی نیست دو اصلا آیه ناظره به خبر نیست ناظره به حال قاسبه و مقصد در رونرنکی که معتمد بر موصوفی نیست این داره مفهوم نیست. این راجبه استدلال به واسطه از و نکته اساسی به نظر ما همینه، اگه خیلی طولانی صحبتش بکنیم خیلی فایده نداره. من چه به تعبیریشو مفهوم شرط بگید هر دوم و سومه. به تقریب ان وجوب تبیین امر خبر قد علل را مجيء الفاسره به همون نکته‌ای من از اول به شما نقصره عرض کردم هی hey, تکرار میشه طبعیم رفته روی خبری که پاسخ بیاره خب این اول کلامی نظام ما معتقدیم که این نقوه بحث کردم و بعد چند صفحه ایشان بگه بلا ما تحقیقی که از آیه میکنیم این این در حال احوال پاسخه خب این یه مقدار توضیحات زائله بعد ایشون می که در این استدلال چند تا ایراد شده بود اولوی خودشون برداشت ناظره به خصور مختزیست برداشت هم خصور استرالح وجود مانه ای که ایشان بعد وارد بحث میشن عمل ایراد من نهایت مختزی راجع به اشکال در نهایت مختزی همون اشکال معروفیست که حالا من هم دقیقه ندیدم که در کلمات و سوی نهل سنت از چه زمان این اشکال شروع شده این اشکال همینه که اینجا قضیه مسوغ است برای بیان و موضوع و قضیه شرطیه که مسوغ باشه برای بیان موضوع این مفتوید دارد مثلا اگر گفت که اگر امیر سواد شد ارمکه برای امیر تخوض مثلا رکابه اگر پول گیریز آمد تصدق به اگر پول داشتی. صدقه بده این اگر پول داشتید صدقه بده محکوم نداره چرا؟ چون ملک مالن اگر مالک پولی شدی، این خودش همون موضوعه موضوع تا صدقه بده این موضوع همون صدقه هست می این موضوع است برای تا چیز دیگری نیست حالا اینجا هم همینطوره میگه خبری را که خاصه بود از این مفهومش مفهوم نداره شو اگه خبر فاس خبر نداره اون چیزی خبریم. نیست بحثی مطرح که به اصطلاح احتیاج به نبع باشد بعد ایشون الان عبارتی که خوندیم ایشون اینطور میگه برند فيها ان موضوع قضیه هوا النبع ایشون میگه موضوع در قضیه نبعه و مجیع الفاسق به شرط کنده بود تو این خبر اگر از طرف فاسق بود تباییان فلا تکونه قضیه تو شرطی مسوطتن لبیان تحقیه موضوع حالا توضیحی که ایشون میدن اینه ان جزا ایشون اینجور تصویر میکنن که بعد میزان قرار دادن من عباطه ایشون رو میخونم و این میزان رو به تحبیر توضیح میدن ایشون میگه جزا تارتن یکون و فی نفسی متفرقن علی الشرد عقلا بلا دخلل تعبد المولوی فقط بلا دخلل تعبد مولوی نقطه رو خیالتن و تعبدی هست کما فی قوله که این امروز اخترادات پخته مرد اگر بخشش یابد خط نشود و امسالی و او را یکون متفرقن علی تعبد مولوی و یوهات نه متفرق در کمان از آقال مولا از آجا این جا ای که زیدون نل اکرام قیل و متوقفن علم مجیع اقلن نزیر ترکفت خطان علا وجود البر فماکان تعلیق و فیه من قبیل الابل فاقوه ارشادن لاحکم الابل و مسوغن لبیان الموضوع فلا مفهوم لحل و ماکان من قبیل الثانی فاقوی و المفهوم و حال آقوال میزان و کلی فیکون قضیه شرکیه مسروفت اندبیان موضوع و عدم معیار در قضیه شرکیه این میدونن اگر جزا عقلن متوقفه بر شرکه اینجا مسروف برای بیان موضوع اگر تعبودن یا اهلا متوقف نیست حکم آمده که این حکم متوقف بر شد این دوگه اینجا مسروف برای بیان موضوع نیست محکوم برای ثابت بعد ایشون یک مطلبی رو دارن که گاهی موضوع مرکبه داریم بسیطه در مانحنفی میخواد در برنید که موضوع مانحنفی به اصطلاح مرکبه این میگن. بله بعد این ای را در وصل دارن ولی یعلم انه تمید جز الگه اخید موضوع اندل حق پی مقام الاسواف الجزء جز الگه اولغا علیه حب. انما حقوق الاسطده ها من سیاق کلام به حسب متفا حمل بر این اگنوزیس که بر می‌گرده به عرض استظهار و اوفی مثلا اگر گفت اینجا که زیدا نکردمم انسان میفهمه موضوع زیدا و ماجی عم ما اول قعلیه وجوب اشنامه و یعنی عکس سوال فی مو اضافال انکار جای زیدا فکر کردم فئن الظاهر منه ان جای هو بر و کونوه زیدن شرطان لوجوب اکرامی و ها کدا فی سا ار الانسله این تحریفیست یعنی همون نکتهی رو که من عرض کردم خدمتون من چه نکتهی رو عرض کردم؟ ای که من عرض کردم بود که ما برای فهم روشن کلام باید دنبال مسار کلام بریم سیاه کلام یا حالا به استدار این روزی ها روحی که کلام برای اون سوق داده شده بگیم در اینجا الان ایشون فهموندن که این به حساب اثبات مقام ارخ میفهمیم تحبیر من شد رساتر بود ما از کردیم برای فهم مطلب باید با اون سوق کلام مثلا در ما نهنافی کلام چیه؟ تقسیم خبره یا سوق کلام بیان حالت پاسه اگه اگر تقسیم خبر باشه یک اثر داره بیانه حالت فاصل باشه اصلی ایشون تحویرشون این تحویر فرق و این من لگیشان این یک مطلب بعد ایشون که رفت داله وحر لکه انده شرط فیل آیت المبارکه و حساب تحیل مرکبون منجوز این کلمه این شرط در اصطلاح اینها کنه وقت همون موضوع یا به درست امان شده یکی نبه یکی هم کمول آتی بیهی فاسقن و یکون و احد و هون نب خود نبه موضوعه یعنی خود نبه اگر نباشه منو داره تباییان منا بکنم اما این که فاسق جاید بهی باشه این قابلیت داره چون که فاسقه به او کسی که اورده فاسقه کسی که اورده فاسق نیست پس در حقیقت دو تا شهر در اینجا داریم یکی, یکی به. نبع یکی علا آتیبه نبه قبیل موضوعه اگر نباشه تباییان نیست اما علا آتیبهی فاسقه نبه باشه آسیبی فاسق نباشه خبر باشه عادل اگر خبر آذر رو خبر رو آذر رو باشه یه تباییون و یکون و احد هم و, و نبه موضوع هم از فرموی شرف می انگاه موضوع بیه للحکم المذکور فلی جزا که حضور تباییون باشه لتوقفی علیه حقلن فلا محکومه قضیه به نصف علیه ولجزعر آخر به کانون آسیبیه فاسقه هم من مالای توقف عليه الجزا جزا فتدل و قضیت و بالنسبه محفوم به نسبت و مفاد و عدم وجوب تویان ان اندن تفاق کون آتیبی فاسدن اگه فاسد نبود دیگه تویان نیست و حوال مطلوب این راجع استدلال محفوم استاد البته ایشون باز اخذارت ميكنن و به آخرش همون نقطه رو که ما اعرض اون نکته این بود که آیا قضیه مسوب است برای نبه قضیه مسوب است برای الجائبه فاسقون او آدم یا قضیه مسوب است برای ریان حال فاسق ایشون میشه هم فتحس بلا اندلات العاید شفه المفهوق ایلتان متن چون ایشون این معنی سوم رو میگیرن من ناحیت المختزی معتقد نظر وجود الوانه این آخرین بحث ایشان در ایشان ارز کنم که این م... مطلبی که فهمان قضیه شرکیه بیان موضوع یا که ایشون معیار زدن که اگر حبالنیت رفع کنه مطلب بعدی این مطلبی ایشان ما ارز کردیم توضیحاتی که ما چون ما همیشه داریم تون قضاییات اول سعی میکنیم فهم و عرفی رو روشن بکنیم خب اون فهم و عرفی هم نص و بر عبایت رو معنام بکنیم عرض وقتی که میگه انجا که زیران پر اکرم با ما در اینجا به دنباله، اول یه نکته ای داره استاد من هی میگم این نکته رو بعد میخونیم الان ارز بکنم چرا اینجاست چون به ما تمام عبارات ایشون ایشون در همین صفحه 186 که یه نذر عبارات خوندیم بله بعد در این محضر که اگر غضیه مشمول باشه جز شرط مصوب باشه برای امر موضوع می‌فرمایم خلایت اونور قضیه مفهومون الا ایدو... فی ما علاقه آن القیدو راجعنا إلى الهوف، قیل ورب الهوف زنن و نزول، لیا دلّا على انتفاء الهوف اندام تفاوته. تنها کوم اینه، با اثبات این ابرازشان، آن مفاد اداب الشاعر تعلیق جمله تنعلاج جمله. به حسب ظاهر کلام، کماسر عبیه علماء آهله العربیه، کماسر عبیه اهل العربیه و علماء المیزان. مراد از میزانی که همون اصلاح منطق باشه عربی هم که ما این توضیح رو سابقا مفصله هم تو بحث مفهوم از کردیم تصادفا هم حالا در توضیح نما از کتاب محاضرات آی خوبی می که مفهوم جنبش شرطیه تعلیق و تقدیره اینجا میگن تعلیم اونجا اون یادم در اون کتاب حالا شده مقابل نمشتیم ظاهرش اینه که گاهی تعبیر شده به تعبیر، گویی تعبیر شده به تعبیر و به علمای ادب و به علمای منطق ایشون نسبت دادن حالا من این توضیح رو اینجا از بکنم در کلمات استاد روی این مطلب حساسیتی نشان داده نشده. نکه ما در بحث مفهوم شد توضیح دادیم. گفتیم تصادفاً این مطلب از حساسیت نیست. حالا شاید نظر مبارک استاد این بوده که یک معنای کامعی رو فرض کن که بردو بخور از سر این بحث رو به این صورت مقومه های آشانسن اسمانی مفصل داره و ایشون بین تقدیر و تعلیق فرق گذاشتن. ایشون میان ظاهر عبارات علمای ادب این است که تقدیر است لیکن ظاهر علمای منطق و فلسفه تعلیق هست تقدیر نیست تقویر یعنی چی؟ تقویر یعنی فرض تقویر یعنی قید شدن تعلیق نه یه فرض نیست قید نمیشه تق... تعلیق این است که مطلبی رو بر مطلبی بار بکنه این که بشه ما برای اینکه که بز... البته ارز کردیم دارم محلش که من حالا خود من هم نشد از اون زمان هم تارا گفتم تو ذهنم نیست که بین علمای عربیت و منطق در اینجا فرداشت من ها شما سکین تو فرداشت تو ذهن من نبود برای و اما ما اونجا نقطه رو ارز کردیم نکته اساسیش اینه در جایی که تقدیر میدینه در حقیقت بلا حاضر تقدیر مذهب به جونده شدیه میشه جزا مثلا میگه تقدیر باشه مثلا میگه انجاک زیزان فکر اون این این کلام اینه اکرم زیدن فی فرز مجیه این اسمش تقدیره تقدیر این است به این معناست که مصحب کلام جزاه مثل جزاء جزا اکرم زیدن فی فرز این جور معنا بکنیم تقدیر رو و اما تعلیق نه ناظر به جزا است، ناظر به رابطه بین شمس و جزان. یعنی وقتی یه این جا اکه زیدان فرکت آیا ناظر به این لهم اون صحبه کلام که از خدم مسابه کلام ولی ازا این که آیا تحلیق از یا تحلیق خود مرمان شما سن تماهیرش دیده که تحلیق دید. آیا آره کوئی از خدم اون تو که هم تو زیدنم از محاضران به نگاه کردیم از و تقدیر و تعلیق حضر با هم بوده. این جا هم تعلیق تنها بوده و نصب و اهل عربی و میزان و که من با اشانسین بین این دو سا فرق گذاشته بین تقدیر و بین تعلیق یک به علمای عدم هم تقدیر نسبت داده به علمای من که تعلیق نسبت داده الان من تو هم نیست. این که الان شد. سال پیشم من این کلام شده دو تا پیغه بحث مفهوم قرعه است مثلا شما خودتون که نگاه میگن که کتب عدل رو به ذهن من هر کی در کتب عدل من تعلیقه و که شما نه در کتب عدل تعلیقه این دو رو فرق گذاشتید وقتی یک کی خودش توضیحی داره بعد از معاصرینم توضیح دادن خیلی واضح نیست اون توضیح واضحه همین شما خدمتتون عرض کردم اگر تغییر باشه تمام مذهب کلام او جزا ہے۔ میشه قید برای اون. کلام اینجور گفته اکرم زیدان فی فرض مجی هلا باشه. کلامی. و شايف اما اگر تعلیق باشه مذهب کلام رابطه ای بین این دو تا است. لکن اگر بین آمدن و بین وجوب احکام تلازم هم. ناظر به رابطه هست آیا ما معتلی محبوب شما سه الان ما به بالی نسبت نشدن خب درستم چون خیلی وقتی چه چهار سال دوست داره من نایدم الان ما به بالی ایشون قالب تقدیر محبوب شرط و قالبه ما اونجا عرض کردم کیت قالب تقدیر بود دیگه جای محبوب شرط نیست چون اگه قالب تقدیر شد چیزی شبیه محبوبه وصفه قیده دیگه اکثم زیدن سیفر زمجیه روست خیلیه ناسی که دیدون کتاب زید توصیف خیلیه به نظر ما اگر غالب تقدیر شدیم خوب دقیقه کنیم دیگه قاعتم باید مفهوم و غالب اگر غالب نتعلیف شدیم محلی کلامه مفهوم و شرط نزد چون ارزیاب میشه محلی شرط محلی شرط پس یک نکته اینه که آیا تعلیق هست یا تقدیره من ارز کردم که ما اهل ارف هستیم ارتکازات و رو، انصافاً ارتکازات و عرفیه ما تعلیق رو می فهمدیم همین که آرخ بودید در اینجور علمای عربیت و نیزار هم نسبت دادم ارتکاز و ارفی اینه اینه ارتکاز و از مثل این کلام مثل لوکان فیهما آله هزنالله هست. لفظه هستن اگر خدایان دیگر از الله موجود باشه، فرانسان مشرکین هم قائل به الله بودن آیه بگه شما الهی دیگری از الله هم بکنید زمین و آسمان فساد یعنی آیه ناظر از این رابطه دخل کنید این رابطه مادرین تعدد آلهه غیر از خدا اضافه تعدد نه وجود آلهه ای زادی و خدا بینید این یک نوع رابطه هست با مسئله نابودی آسمان و زمین آسمان و زمین از بین میرن این آیه این آیه ناظر به تلازمه این جایت زیدون فکر ما کل ماکانت شمس و طالع کار نارو رو موجودن آن او که زلیلی که در از در خیوامت باشین در پس از کراس خارش از کلی شمسی هم خارش, شمسی و خارش از منظوری شمسی هم خارش شده جایی باشی یه خورشی در میز اما قضیه هست این کل ماکانت شمس و طالع کار نارو رو موجود پس نقطه رو بکف بکنی اون نقطه احساس میگم تعجب به مرموم اصطور با اینکه شاگه دارن همه های هستن خیلی این رو بزرگش نکردم این هم یکی از نکات اساسی تو مفهوم شرطه چون به نظر ما اگر تقدیر باشه مرجعه تو مفهوم بستن اگر تعلیق باشه وقت اثبات بکنیم که محلق شده بر این عنوان و این عنوان هم علت باشه که دیروز ارس کنیم شده اولیتی اثبات بکنیم. و این عنوان منحصر باشه که اینم از راه مقدمات به،, به اسطلاح حکمت و از راهی دیگه اثبات میکنه اون وقت مفهوم ثابت میشه و نمیشه پس یه نقطه اصاسی همیشه که ایشون اینجا فرمدن با توضیحی که من ارض کردم ما باید بگیم که جمله شرطیه پرقش با وصفیه اینه در وصفیه تحیید هست در شرطیه تعلیح هست این دو با همه دیگه فرم بکنم غیر غیره این یک مطلب یه مثل دیگه اینی که ما هر برین قضیه یک مسروع برای موضوع دیگه اون این راهی کار خویی گفتن نه ببنید. راهش الان ازا توزی این ما بینید گفتیم این رو زخته بردن فخته نکنم اینه ما از کردیم دربا به تحلیل قضیه شرطی اول میروی جزا اختنل ولد. اختنه برد اینجا همینطور که دیروز ارز کردیم یک هیئت داریم که وجوبه یک ماده داریم که خسانه یک موضوع داریم یا موضوع موضوع داریم و موضوع به اصطلاح به اصطلاح متعلق متعلق داریم اسم اون هست اختنهو ها اختنهو اون رو خوب دقتر بکنیم ما در زبان گاه گاهی اون جب... یعنی این در زبان عرب یک استاندارد نشد خودت فکر می‌کنی؟ کردن چند دفعه از کردن هر زبانی داره یک مشکلاتی. هر زبانی فارسی، انگلیسی، عربی چرا اون زبان از آمه مردم گرفته بیشه لذا میگن حالا مثلا یه و دو دنبالی سری سریمیز دنبالی شدن یه زبانیم توی همون زبانه تاوود توی همه مدرسی سرکترن تربیش بکنم به نام این زبان استرانتوری خسلات عمومی این زبان اینه آمدن همه قواعد زبان او مشخص کردن که دیگه توش چیزی خلاف قاعده نباشه سمایی باشه همه رو چارچوب بندی کردن نکته چیه؟ نقطه رو آیوکوی تحلیل نبردن نکته تحلیل اینه که متاسفانه در زبان عربی خود قفو کنیم اینطور نبود که مثلوب و عدات شرد همیشه حالت باشه این مردم شوفر کردن دیگه گاهی اوقات مطلوب و علاقه شد تفسیر همون موضوعی که در جزاه این روز اختبردن فختنه این, این روز اختبردن برن همون فختنه های فختنه هاست یه چیز تازه نیست این داره کاری خوبی رفتن ما نمیدیم یعنی نکته روشنشت به اصل این مسئله کجاست؟ تو زبان عربی نه بگن دیگه آما هر وقت عدات شرط میاریم باید حتما خالت باشه. مثلا اگر زد بیداره 5 تومن بهش بده. این خب 5 تومن بشه یعنی بشه این بیدار روزن یک حالت بزیده. پس موضوع عبارت بشه این یه حالت. این در این جور یعنی عملاً آروم در حضور این تحلیل رو کردن تو در لغت عرب ام وقتی وارد میشه دو جوره یک جور نیست ممکن است شما الان مثلا اسپرانتو یه لغت جدیدی کشف بکنید جعل بکنید مثلا یه لغت جعل بکنید ببین دو تا دو تا اداکرار کردید دو تا تعبیر قرار بدید بین این دو تا دو تا تعبیر قرار بدید اما الان توی لغت عربی یکیه و اون نکته اینه که وقتی شما جذا رو نگاه میکنید اون ادات شرک آمده این محقق خود جذا چیز دیگری نیز قدر اگر بچه گیران خط نشب کن این یعنی اون بچه رو اما این بچه رو این بچه رو فهم نمکنم این بچه لذا در علم اصول این تشکیز رو دادن که چون در لغت عربی گاهی عدات شخص به کار برده میشه که نازر است به تشریف موضوع یا متعلق و متعلق گاهی هم راجب به حالات موضوع حالا آیه خویی تعدیلشون یا اصولی اینطور شده قضیه شرکیه شرکیه مطلوب و عدازی شرکشون از کم شرکیه گاهی به خصوص شخص بفته میشه گاهی به مجموع شرکت و جذب گاهی میگه این قضیه شرکیه برای معقول برای هر موضوعی سنچی یعنی مطلوب و به شد بیان همون است یا موضوعی است که در جزاء آمده خب خو نه خو نداره اما اگه برای بیان حالت باشه دیگه معقوله حالا بنده حالا این روی تعبیر آقایان حالا آقای بیشتر تعبیر که خود من خود بنده از همین تعبیر رو نزدیم از آیون ما حرفمون اینه که اگر قضیه مسئول باشه با در موضوع سنایی میشه اگر برای بیان حالت باشه سلاسی میشه <تصفيق> اون تصویر که با کردیم اون تفسیر ما دو سه روز گوش کردیم میگه، ما میگیم اگر میخواد محکوم بشه بشیم باید قضیه سلاسی بشه با سناایی شدن محکوم منعقد میشه. اگر گفت اختنهو این اختنهو که وجود شتان تعلق به ها که باشه اگر ما بین این موضوع و واقع وجود به یه فاصله ایجاد بکنی میشه سرازی فاصله ایجاد نکر میشه سنایی. پس اون تصویربنداً روشن شد. آرو گزینه معیار گفتم معیارتون ها اول معیار اگر نازل نازل, نازل با موضوع باشه اینجا مفهوم نداره نازل به حالت باشه حکم باشه مفهوم داره ما الان باز روشن کردیم نکته فنی اینه در حقیقت فنی فنیش اینه یک اولا روشن شد سر این بحث اینه که ما در زبان عرب یک مشکل داریم عدات شهر دو جور استعمال شده لذا نمیتونی بگیم هر جا عدات شرد بود مفهوم هست این در زبان عربی ممکنه ما یک زبان جل بکنیم که هر کدوم جداگانه باشیم برای تحقیم و موضوعی لفظ بیاریم برای خالت لفظ بیاریم اما الان در زبان عرب هر دو رو با هم میگم میدونه از فنی هم پر رو خب تحقیه و موضوعی چیزی یا حالت دیگری دیگر. بود با در زبان عرب میتاره اون از نقطه فنیش به نظر ما اینه که اگر برای تحقیه موضوع باشه و قضیه روح قضیه سناییه و اگر برای بیان حالت باشه روح قضیه سلاسیه اون اینه اگر سناایی بود جای تصور مفهوم نیست سنایی؟ بگه یک این امروز اخته تفسیرهای اختنه هست چیزی جدید نیست بچه گیر آمازون بچه خطی کنم باید بچه باشید چیزی چازه این اما میگه اگر بچه گریه کرد قرص آسفلین بشه بده ببینید اگر بچه گریه کرد بش بده این زمیره بش بده مثلا اطعمه ها مثلا آسفلین این اطعمه ها اون جمله شرک اون شرک برای دایانه ها نیست یه حالت حائس اون زمیر اون بچه یه حالتش گریه میکنه یا جیغ گریه نمیکنه پس معیار در حقیقت برگشتن به هم معیاری که من هر روز عرض اگر قضیه مسوول بود برا بیان موضوع قصه در حقیقت قضیه سناییه و اون شکلش تعبیر شرطه و اینم نکتهشم عرض کردیم قصوری در زبان عربی در زبان عرم به لحاظ تعبیری هر دو رو با یک تعبیر کار می برن. و اما اگر نه حالتی بود برای او اون وقت در اونجا بحث مفهوم پیش میاد. اون حالت مهیار که قصر سلاسی بشین مثلا فرزند شما دادن آستری یه وسط یه حالتی پیدا میشه اگر گریا کردن اگر گریه کردن. اون گریه کردن که میاد بیشتر می فرزند هست دادن آسفریت میکنش اگر فرزند شما با دادن آسفریت چیزی بینیشون نبود مخلوم نداره و رضا گفتیم مثلا میز بخر مخلوم نداره بله اگر میز بخری تو شد چیزی بخر چه برابی بخر یک چیزی به شرطی که براش میز بخته بشه این بشه مخلوم نیست. پس میار در مخلوم پیش ما سنایی بودن و سلاسی بودنه میشه روشن شد و اگر قضیه برای مسوب برای برای موضوع باشه سنای میشه مفهوم نداره صلله یکمه آمه را ما کردیم و به نظر من کییتش یکی ما و تش هم کرد نقطش